بله. پرستن که آیا از نتایج و نشانه‌های تقوا داشتن تقوا داشتن باز شدن گوش و چشم است یعنی تا وقتی گوش و چشم باز نشده به مراحل بالاتر نرسیده ایم یکی از فواید تقوا پیدا کردن بصیرته خداوند به واسطه عمل تقوا به انسان فرغان میده نیروی میده میتونه فرق بین حق و باطل رو بفهمه اون وشی تمایز و اون چیزی که فارق بین حق و باطله رو این متوجه میشه یکی از سمرات دنیاوی تقوا هستش اینم به تدریج پیدا میشه وقتی انسان تقوا رو عادت خودش قرار میده دیکی از سمرات بنیه فرق بین حق و باطل که براش حاصل میشه بله خود خود فرد متوجه میشه که چنین حالتی در او ایجاد شده یا نه گایی اوقاتم توجه به وجود این حالت نیست ولی خود حالته هست بله دقیقا متوجه میشه که تو زندگیش ایجاد شده راحتی زندگیش بیشتر میشه. گرگوره ها کم میشه. بهترین حالتی که برای انسان پیدا میشه به جهت رحمت الهی که شامل حال با تقوا میشه آرامشه. استرابش کم میشه. چکنم چکنم تحییرش کم میشه. تو زندگی درگیر نیست. دیدین بعضی درگیرن با خودش با خانوادهش، با رفیقش، با همکارش تو تاکسی میشینه، داره راه میره خلاصی درگیر میبینه نه زندگیش مثل که روانتر و تغییر انسان کم میشه بله